چهل سی چهل چهار بحث قواعد فکوصی و سوال حکومم بیست و یک هزار چهارصد و یک آموزش عالی هوزهی امام زناله سلام ادامه بحث قواعد فقه اهم و مهم اسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا علی القاسی محمد و علی اهل وقت طاهرین المحسونین سیام و الله فل عرزین روحی بر بحول علمان له الفدا فرمودن که این تفصیل قواعد تضاحم چه و چی داره تضاحم در زندگی ما جاری و ساریه یعنی در زندگی فردی، زندگی اجتماعی اتفاقا یکی از پرکاربردترین و پرمسئله ترین مسائل رو ما از این زاویه میتونیم در نظر بیم. بسیار از استفتائاتی که میشه مربوط به اینه. یه کسی میپرسه آقا مثلا فرض کنم من در اروپا دارم درس میخوانم هجابم این گونه از اون گونه از اگر هجابم رو رایت بکنم این زررها ها داره جلومه میگیره اگر این کار بکنم اون کار بکنم چطور میشه یه وقتی که زمان مثلا رفعه هجاب در اینجا بود میامدن میپرسیدن در مباعث جاری حکومتی دائم ما با این مشکلات مواجیم مثلا میخوایم وارد باب جهاد بشین به صورت عملی کسی کسی میگه آقا حمله کنید میگیم آقا اونجا دو تا آدم هست اگر اونا رو به زنی بکشیم خب اونا مسلمان هست اصلاً و مؤمنان مؤمن نیستند با مثلا الان فلان کشور ما رابطه برقرار کنیم یا نکنیم محمولا هم جنبه دو طرف رو می پیدا کنیم یعنی مصالح و مزار هر دو با هم هستن خیلی ساده ساده نیستند ما در مقام بحث طبیعیه اینا رو کمی ساده میکنیم تا بعد در مقام پیچیری در شدن این معیار ها مختلف رو با هم در نظر بگیریم اتفاقا در بسیاری از موارد ما در واقع وضعیت تزاهم در عالم خارج معمولا به صورت ترکیبی است معمولا مختزی رعایت معیار های مختلف ام و مهم در جنبه های مختلفه از این جهت بدون ساده سازی اونها و در واقع تفکیک خواهد مختلف نمیتوان این بحث رو پیش گرفت در واقع بعد اول اینا رو جدا کرد تفکیک کرد در مقام در مقام تضاهم های خارجی اگر اینها رو ما تفکیک نکنیم نمیتوانیم حل کنیم هر کدام از یه حیث اهمیت داره شما الان میخواید اونها رو نمیتوانیم بشناسیم و نمیتوانیم اونها رو حل کرد بنابراین این معیار های مختلفه شما از یه جهت میگید از حیث زمانی این تره یه نفر می میگه که آقا منفعتش بیشتره یکی دیگه می میگه که این سودش به افراد می میرسه شما میگید که در بین مثلا کارهای اداری تقسیمات کشور یه مقوله مهمه میاد میخواهید مرزگذاری بکنید بین دو استان خب در زمانهای جاری که معادن وجود داره اگر معادن رو ملی ببینید یه نوع به بحث خواهید پرداخت اگر بیاید بگید که درسته معادن ملیه درسته که نفت ملیه ولی ما اینجا به هران نزدیکی دیگه ما داریم اینجا زحمت استخراج نفت رو میکشیم اون یکی میگه ما داریم اینجا زحمت استخراج تلار رو میکشیم در روز دیگه ممکنه شورش بشه خب شما اگر مصلحت عموم مسلمین عموم جهان اسلام رو بگیرید این یه اقتضای داره پس مصلحت برمیگرده به های مختلف به افراد مختلف به این گروه یا به اون فرد خیلی راحت حالا در تعابیر مرحوم نایینی هم هست که مصل قبل خون عمومی بر مصلحت خاص مقدمه یا یه تعبیر رایج شیعه سنی این که میگه مصلحت این حق ناس مقدم بر حق الله خب انجام تکالیف الهی سنخواه مختلف داره بعضیش به مردم برمیگرده خب اینجا الان ما کجا کدام رو مقدم بکنیم لذا اینجا اصلا بحث شیعه سنی نیست اون از زاویه بحث دانشیه که عرض کردیم بعضی مباحث همونطور که الان شما مقایسه کنید یه سری مباحث اصولی شیعی تفصیل بیشتر پیدا کرده طبیعتا عمقی که در مباحث شیعه در مباحث فقری و اصولی شیعه وجود داره الان در فضای اهل سنت وجود نداره اما از یه جهاتی ممکنه اونها لیست موضوعات رو بیشتر استخصا کرده باشن از این جهت من عرض کردم یعنی ما مسئله رو کار داریم ما به عنوان مسئله نگاه میکنیم ببینیم نیازهای جامعه چی هست این مواردی که ما عرض میکنیم الان ما تقریر دیدگاه شیعی میخواییم بکنیم اما در تقریر دیدگاه شیعی یه جای کار بیشتری شده نظم نسق و تبویب شفافی از شما خیلی راحت میشه پیدا کنید در بحث تزاهم متاسفانه به نشده حال به ویژه در امور حکومت داری ما حکومت داریم اون نیازمند اینه که تمام اینها رو از هم تفکیک کنیم من مثال ارز کنم با بعضی بزرگوارانی که از سربازار گمنام امام زمان هستن هم بحثا رو داشتیم برای کار سرفست نویسیم من یه مقدار اینا رو مرتفع میکردم موضوع بار به زو برامده بود چرا؟ چون ما هم اینا رو با کار داریم اینا رو برج سوید بکنیم و به صورت تطبیقی یعنی اینها اتفاقا نیازمند هم که یک نما و شمای کلی ما به دست بیاریم اون شاکله کلی اینا رو مئیار رو از هم تفکیک کنیم هنوز حتی بحث فقی سنگینی هم شما میکنه بگید اینجا ما امکانش نداریم. تا کم داریم ولی اول این معیارها قواعدی که امکان داره جدا بشه من میخوام بگم که بعضیش به هم بر میگرده بعضیش به هم بر نمیگرده سعی دارم میکنم که اینا رو تفکیک کنم اونایی که تفکیک ناپذیره میگم آقای اینا صرفا صيغه تعبیری مشابهت داره تفاوت داره یا نداره ولی شما در عالم پزشکی عربستان یک سمینار خیلی بزرگی گذاشتن بین المللی نسبت به نلی اون برای بحث فقه موازنات. مقاله مختلفی مثلا کسانی رفتن در عالم پزشکی ما حکمی که اونو کار دارن کار نداریم خروج اونها رو ولی ببینید آمدن مسئله شناسی میکنن الان عالم پزشکی که ما داریم و فقه پزشکی باید تاسیس میشه خیلی جا تضاحمه دو تا پزشک دوتا تا تشخیص جدا دارم یا یک فزهش داره میگه اگر من چاقو جراحی رو این گونه استفاده بکنم وارد کمی بیمار بکنم از یه تحقیق قط... یه اعضای قط میشه ضربه من میزنم اما برای نجات جان بیمارم مثلا اینا ضروریه خب این در حد خیلی کلیه خیلی مواهدت رو یا مثلا اگر من این عمل رو انجام بدم بیماری شماره یکش طولانی میشه اما بیماری شماره دوش زودتر حل میشه باید اهم مهم کنیم پس معیارای اهم مهم رو باید بدانیم تو بحث تجارت خارجی شما میخواید با چین مذاکره کنید با چین ببندید با کشورهای شرق ببندید یه منافعی برای شما داره یه ضعف هایی داره یه ضرر هایی داره میگیید آقا اینو بازار ما رو میگیرن خب اگه با غب ببندید اونم هم همینطور شما ده ها مزار مزارو بعد بغل دستم بچینید مقصدو رو بچینید معادل گیری بکنید اگر همون آدمی که داره میگه آقا با کارت ما میشیم یه مسئله تی میبینه فرض بگیریم تشخیصش درست باشه خب بعد بگیم آقا این مسئله چقدر وزن داره سنجه های شناخته اینها چیه وزن هر کدام از این مسئله چی بعد واقعا دستش مزارش رو لیست کنیم یک دو سه چهار بعد بگیم که اینا سنجه ها چیه صح وزن اینا نهایتاً چه خواهد بود بر با هم مقایسه کنیم در مجبور ببینیم سود و زیان چیه یعنی ما الان در عالم عملی هر کاری میکنیم انجام بدیم در زندگی فردی در زندگی جمعی زندگی فردی و جمعی مشهون از تزاهمهای اینی و فراوان و مندگاره برای در واقع زندگی بهتر فردی و جمعی و بگیم اجتماعی نیازمند به دست و, و تحصیل در واقع جدول از شاخص ها مرجعات سنج ها و خلاصه شاخص هایی هستیم که به ما کمک کنه هم مرجحات عام، هم مرجحات خاص هم شاخص ها باید ما داشته باشیم و زوابطی برای تقدیم اهم اولا هم شناخت شناخت اهم و مهم و یا غیر مهم داشته باشیم و برای تقدیم و ترجیح بعضی از اونها بر برخی دیگر باید باید داشته باشیم اگه نداشته باشیم خلاصه دو مشکل میشیم یه دست رو این جنب ولی امر اساسیه یکی خاطرم هست یکی از اساتید علوم سیاسی ما در دانشگاه که نماینده مجلس هم بود روی این یادم تاکید داشت فهمید به صورت چون عینی خیلی ذهن منسجمی داشت و دنبال چونی معیاری بود خیلی دنبال این همه رو حس میکنن اما کسی نمیاد جدول در بیاره در واقع مورد نیاز جدی ماست خب اگر ما این قواعد رو در واقع بشناسیم رفع نیاز مزبور امکان داره مقتضی چیه؟ این رفع نیاز مقتضیه تمییز قواعد کلی و جزئی در مباحث اهم و مهم هستیم خب نمیدنم حالا جنوب آقای ابراهیمی قانه شدن یا نشدن پس میار بحث ما بحث اهل سنت نیست اما از جهت دانشی اینا یه کارهای کردن که حتما باید مورد چیز قرار بگیر باید باید ما اون ها رو دسته‌بندی بکنیم و به بحث بذاریم چی شد؟ اون مثلا رسیت بحث آقای خیلی سدش من ذهنم باشه. آقای, آقای باز اگر فرمایشی دارید در خدمت بله. در حال شاید هم قانه نشدید اما فکر میکنم من تجربه خودم در مباحث و استقراه که لابلا فرماشه تو علمای شیعی داشتم بحث ما فصلی خیلی چند ساعت باز یکی دو هزار ساعتی باز نیاز دار برقم چند سال پیگیری که من داشتم لابلا فرماشه تو علمه به صورت جزئی, جزئی برجسته کردن یعنی ببینید شما در میان احکام مثلا در رساله عملیه یه چند تا مثال آمده میگه آقا شما دارید نماز میخوانید یکی میاد از شما طلب کاره نماز تو مثلا راکم رو بدهی رو بده خب شما اتفاقا اگر بیاید تو تمام قسمت های رساله یه چند تا مسئله اهم مهم درست کنید در بحث نماز شما مثلا قدرت و توان کمی دارید آیا جوز رو انجام بدید یا شرط رو تضاحم بین جز و شرط قبلا این تیتر رو عرض کردیم لا بله های مواسفه اشاره میکنم در بحث های حمصلات و اینها شما یک قدرت بیشتر ندارید خب بیت حالا همه ابواب دیگه این موارد اهم و مهم رو کامل میشه تفکیک کنید اما اینها معیار میخواه معیار بعد اولا ما تو مرحله اولیم که یک کمی اینا رو اصلا جدا کنیم مرزاشون رو ببینیم قابل جدا شدن هست یا نیست الان اینای که ما گفتیم تو زندگی روزمره ما هست خب بعضی موارد دیگر ما با سعی می کنیم شاء تفکیک کنیم این قاعده دو قاعده ای که من اون بحث نیم سال قبلم آخر بحث داشتیم در نقد اون آقای سوسو بعد این دو قاعده در واقع تقدیم درجه درجتن روی کمی شفاف کردیم و اعلا نوعن بازم یاداوری میکنم چون به این بحث تقدیم اعلی اعتبارن علال اقل اعتبارن یه مقداری نزدیکه و میتوانه این بلکه این میتوانه شرحی بر همونا باشه قاعده در چی بود؟ تقدیم بگیم تقدیم اعلا درجتن بر اسفل و درجتن یکی دیگه چی بود؟ قاعده دیگه مشابه بود تقدیم اعلا نوعن بر اسفل و نوعن یا هر تعبیر دیگه اینجا مراد چیست ببینید یه تقسیمی که علمای شیعه هم به کارش بردن مثلا شهید اول و شهید ثانی و نزدار قبائد و وزی از این بزرگان اما چون یه پایه مشکل دارید داره دیگه خیلی هم بردسته علماو بعد نکردن اما نخی هم نوی کنن فیل آهلا. اونجا چی بود؟ ما گفتیم سه درجه مساله چونکه این آن بیشتر تمرکز رو میبرن رو یه جای نامناسبی و شناخت مساله و مفاسد اما ما میریم بر اساس نصوص اونها فراتر از نصوص میرن ما سراغ فراتر از نصوص نمیریم ما با قومدش نست یا عقل قابل قبول مساله بر سه گونه است بر سه درجه است یکی چی مساله ضروری مساله پارجی مساله تحسینی هر کدام از این موارد هم مکملاتی دارن این موارد مکملات تشون حکم همون که حکم خود اون درجه رو دارند خب آیا این تقسیم معقوله یا نه اجمالا من و شما همه میدونیم یه سری مسائل ضروریه مساله حاجی ما تشمیه که بخوایم میکنیم یه ساختمان دارین این پیش و اسکلتش و دیواراش میشه ضرورت اگر نباشه اصلا اون ساختمان نیست مساله حاجی چیه؟ اگر نباشه یه عذیت ایجاد میشه یه حرجی ایجاد میشه لذا مباعث لا حرج و اینا رو میبرن تو مساله حاجی مساله تحسینی این که بیاید مثلا شما بیاید پن شیشه که زدید برای رفضا گرد و غبار و باد و اینها که جزت حاجیات بود بیاید شما رنگم بزنید پرده قشنگ بزنید برای زیبایی خب احکام رو دستیبندی کردن حالا مناقشای های مستقل رو ما کار نداریم این نکته فقه موازناتیشو کار داریم فقه اهم و مهمش اه این رو اون نقد و برسی آقای سوس و اینجا یادآوری کردیم که چیه در واقع منطق کار اگر بگم مساله زگوری بر مساله حاج و مسلهتحصیمری تقدمم رتبه ای داره درسته. در رتبه مقدمه تقدمه در رتبه باعث میشه که اونها مقدم بشن در نتیجه شما در مقام در مقام تزاهم بین این سه دست دست مساله مسالهی که رتبه اونها مقدمه بر مساله رتبه های بعدی مقدم میشه درسته خب این دسته اول دسته دوم چی؟ مساله حاجی و در واقع اون قبلی هم این کنیم مکملات حالا مساقش کار نداریم مناقشه بشه نشه قبول بکنیم مکملات مساله ضروری هم چون این حکمی دارند مساله حاجی و مکملات اونها هم بر مساله تحسینی تقدم ای دارند و در نتیجه در مقام تظامقوم این اونها مساله حاج و مکملات آنها بر دسته بعدی بر بعدی تقدم خواهند داشت خوب. اینم کمک میکنه تقدم تو نوعی چی بود؟ گفتیم آقا ببینید الان اگر یک چیز ضروری باشه مثلا حفظ جان مسلم حفظ جان ایمان حفظ دین بر حفظ مال مقدمه بباشید بر حفظ مسائل غیر ضروری مقدمه اینو ما بخوایم تشبیه کنیم در عالم احکام بخوایم بیاریم چونان که در واقع احکام اوجب در احکام واجب تقدم دارند درسته؟ چرا که در از حیث تحلیلی چرا که مساله ضرورت مساله مربوطه به اونها از مسا... زر... از میزان ضرورت در مساله مربوطه به احکام واجب بیشتره خب زنین پس ماهیتشه به تعبیر دیگه اقتضای ذاتی این موارد چون اینه اقتضای این ذاتیشه خب حالا برمیگردیم در بحث تقدیم اعلان و ان. این مساله ضروری عبارت از چی بودن این مساله ضروری عبارت بودن عبارتند هند از حفظ دین این دیگه شیوسونی نداره حفظ دین خب واجبه دیگه ضروری هم هست حفظ جان این دیگه شیستانه که نداره قطعا مورد قبول ما از ما هم اشاره کردن مطمئن احل سنت چون که برن در عالم ملاکات ما نفض زیاد میدن نتیجه حکمی بگیرن ما میگیم آقا نصوص ما بیشتره ما میریم از نصوص دینی مصادقی حکم مربوط به اینا در میره. ولی خود اینا رو قبول داریم حفظ دین حفظ عقل آیا واجب بله حفظ مال حفظ ارز و آبرو حالا بعضی هم گفتن چی حفظ نسل اینا مقدمبا دیگه اینا جز ضروریاتن بعضی هم پس به جای حفظ ارز و آبرو گفتن چی حفظ نسله خب اینا ضروریات شد حالا در من سعی کنم به یه ترتیبی عرض کنم این ترتیب مربوط به اون قاعده بعدیه قاعده تقدیم اعلان نوان بر اسفل و حالا یا هر تعبیر دیگه در واقع در حد این نکتش چیه سرش اینه که ما به کدومو گفتیم اونا اولویت رتبه ای داشتن درجهشون اعلا درجه تن و رتبه تن بودند رتبه ای مقدم بودن اینها تقدم چی دارن اینا تقدم خود اینها هم چی دارن اینجوری بگیم خود اینها هم بینشون میشه ما یه نظمی درست کنیم اگر هر دو در مواردی که رتبه و درجه مساله تو مفاسد هم همینطوره در مواردی که رتبه و درجه مسائل یکسان باشد ترجیح در واقع مرجع کدام ترجیه به رتبه در واقع نوع اونهاست به جایگاه هر نوع برمیگردد؟ هر نوع از مساله برمی گردند اون چیه؟ به ترتیب زیره این موارد رو اینجوری میشه بشماریم یکی حفظ عقل ببخشید حفظ دین بود حفظ جان بود اگر یک دو تا حکم دو تا مسلحه با هم تضام داشته باشن کدام مقدمه حفظ جان مقدمه یا حفظ دین گفته میشه حفظ خدمتش رو ارز کنم دین خب موارد بعدی هم به همین ترتیب بنابراین مسالهی که در مقام تضامن بین دو مسلحت اونی که به حفظ دین کمک میکنه بر حفظ جان مقدمه اونی که حفظ جان رو تایید میکنه و تأمین میکنه بر حفظ عقل طرف در حال نمیره بهتره تا آلا مثلا و یه ضربه مغزی بخوره اگر عقلش از میره یا ارزش یا حفظ نفسش اینا همین و نهایتاً حفظ مال. فقط یه نکته کلیدی اینجا از اون جایی که قابل توجه دوستانی که میکنن اینجا نقد بکنن پس اون قبلی اصل معیار اصل این معیار به صورت اجمالی قابل قبول است اصلا باید بررسی کنیم ببینه ما یه نکته دیگه هم که اضافه کنم به اون بحث قبلی ما در جهان اسلام تنها زندگی نمی کنیم. باید حرف و خبار رو هم بفهمیم خب در بخشی از اینها ببینید الان یک تکفیری یه معیاری برای خودش داره همین جور نیست ما فکر کنیم اگه این مثلا یه چیزی خورداله بازیه هم ممکنه یه چیزی کشیده بیا عقلش زائل بشه بزنه دو نفر بکشه نه اون آدمی که میاد بعدم بعد میا افتخار میکنه میگه من زدم فیلان کس رو کشتم این قشن بزرگ رو میزنم میکشم به عنوان رافزی اونهایی که آدم فکریان اونهایی که مؤمنن یه منطقی بهشون آموزش داده شده و به اونها آموخته شده که چه معیاری رو بعد انتخاب کنید میگه آقا حفظ دین بر حفظ جان مقدمه منطقه مستق رو یه چیز دیگه گرفته میا خودکشی میکنه بوم به خودش میبنده یا به هر حال وارد جرگه مثلا از بنظر خودش عملیت استشهادی میشه این پاسخش به صورت فنی با دیدگاه شیعی یا با دیدگاه سنی باید مستدل با تمسک به آیات روایات مستندات فقی خود اونها بررسی بشه خب پس اینجا میگیم این به صورت اجمالی اما تفصیل اونها میتواند به در واقع معیارهای جزئی بیشتری بیانجامد که لزوماً در همه موارد نمیتوان یک حکم کلی کرد بنا به تعبیر دیگه دایره قواعد مربوط به این به این موارد می توانند دایره های محدودی تری رو خلاصه قابل بگیم دایره قواعد مربوط به این موارد در دایره های محدودی قابل اثبات است و لزومن اطلاق مورد اشاره در بسیاری از تلقی ها در اینجا قابل قبول نیست من یه مثال ارز کنم مثلا چند روز پیش دیدم که جناب آقای عاشق محمد جواد فازل یه متنی حالا در سوچه عمومی تیتری بود نمیدن محتواش چقدر بود نشستی بود یا یه اشاره به درس بعضی از عباس درس خارجشون بود اون کلی که گفتیم معمولا اشاره میکنن تقدیم حق ناس بر حق الله که نه این کلیت نداره پس یکی از قواعدی که باید اینجا در نظر سلسل قواعد اینه قواعدی عام تقدیم اعلان و انبر اسفل و انبر یا هر تعبیر دیگه یعنی چی؟ یعنی این که اونجایی که رتبه مسئله یکسان باشه هر دو از جایگاه ضروریات برخوردار باشن میگیم این دو تا مسئله هست ضروریه ولی یکیش به حفظ دین بینجامه یکیش به حفظ جان یکیشه حفظ جان برمیگرد یکیش به حفظ عقل کدام مقدر اون که دین جلوتره جان بعد از دینه عقل بعد از جانه ارزو آب یا حفظ نس بعد از عقله مال آخره خب خود. پس این هم یک معیاریه که به صورت پیشفرز گرفته میشه هم مستندات در واقع این قاعده هم تمسو که در واقع هم جنبه استقرایی داره در واقع از طریق استقرای نصوص متنوع و جنبندی اونها یه چون این اختزایی داره نکته دیگه برخی نصوص خاص برخی نصوص خاص این رو هم حالا یا فقره فقر اثبات میکنه علت این تو فاز شیعه و سنی هست. خب این نصوص خاص باید چه کار کنه؟ بیا بگه که این مر یا کلی بیا بگه حالا با اون روش شناسی که ما ارزم کردیم تمسوک به تصریحات در قدم اول تمثل که به ظهورات و اطلاقات و در قدم بعد به ظهورات خود هر کدوم از اینها میتونه یه مقاله مفصل خوبی باشه. بعضی پایان نامه و, پای نام و مقاله هم با نگاه شیعی کار شده. لا بلای برخی فرماش علمو هم این کلیتش مطرح شده منطور باید باز جای تعمل بیشتری هست خب فیل جمله جوری ادعای اجماع میشه به صورت کلی تو فضای شیعی چون که کمتر بحث شده جای بحث داره چون خیلی بحث نشده ولی بعضی علمو قدیم برحال مواردش رو دارن پس ما این رو که میگیم اینجا دارن کلی میگیم ولی هر کدوم ا می‌تونه جدا بحث بشه. جان بر عقل جدا بحث بشه. یه جایی هم آیات، روایات، حالا آیات یه وقت تحلیل میخوان یه جایی داریم بعضی موارد هم چیه در روایات منسوسه، حالا تحلیل سندی و دلالی و نه جای بحث داره. خب. بعد در سیره عقلا هم فل جمله توانیم بعضی از اینا رو پیدا بکنیم. چون قبلا این دو تا قاعده رو من توضیح داده بودم اینجا فقط اشاره کردم یه نکته تکمیلی هم برای اون احلا درجتن او اینا بگم مساله اینجا در فضای اهل سنت که مرز ممیز ما هم هست این بسه مساله مرسل است. مساله مرسل مقابل مساله معتبر و مساله ملغات القا شده و رد شده است. خب یه نکته اساسی اون بحثه شناختیشه که قبلا هم حالا ما داشتیم شاید در یه درس دیگه هم تاریخ یادم نیست چه بحثی دیگه داشتیم ولی شاید در یه درس دیگه هم با خدمت شما داشتیم اگر فقه وصول مقارن بود یادم نیست یا یه بحثه سیاست مقارن با شما داشتیم یا نم اونجا بیشتر من بحث میکنم این مسئله مرسلی فقط اینجا در حد تذکر خب این شناخت اینها دوچاره یه مشکل مسئله مرسلی یعنی تحایید و رد نداره خب شناخت اینجا یه بحث تکمیلی خاص خودشو داره بحثیاش هم با هم جلسات قبل ما عرض کردیم اینجا الان بیشتر میخوایم مرور کنیم یه قاعده خب بعضی از این اه اه میارها رو داریم عرض می کنیم یه قاعده که یک کمی به اینجا ممكن نزدیک بشه تقدیم الاصل علافره یعنی مثلا میگه آقا ما میخواییم نماز رو درست کنیم تضاهم بین اصل نماز و این که حالا مثلا فرض کنیم قهارتش سل... درست بشه اینجا میگن که اگر تزاهان بشه که مثلا شما فرض کنید حالا اینجا تشبیه کنیم آقا یک کسی میخواد نماز بخوانه اما اینقدر دوچار وسواسیه که اینقدر کشش میده وضو گرفتنش که وقت نماز هم تمام میشه گفت این در همین حد میتوانه یه مصداق جزی داشته باشه اما در واقع برخی واجبات در واقع حفظشون حفظ و امتصال برخی واجبات می در تزاهم با امتصال برخی شروط و اجزای اون قرار بگیره یا مثلا قبل از شروط بگیم مقدمات مقدمات اینجا قرار بگیره خب این قاعده این قاعده بیانگر ضرورت تقدیم و ترجیح امتصال و خلاصه تحقق بخشیه به اصل واجب است خب در صورتی که رعایت برخی از شرایب برخی از موارد فرعی اون به عدم امتصال اون واجب بیانجامه و واقعا تضاهم باشه تضاهم بدوی نباشه این رو یک نگاه کلی خواستن بگن بگن که آقا این این مقدمه در این صورت دیگه انجام و رعایت اون موارد ضرورت, ضرورت ندارد خب ضرورت ندارد یعنی چی؟ حکم اولیست نه به تعبیر دیگه تزاهم این موارد مختزی شکلگیری عنوان سانویست که بر اساس اون در واقع این اهمیت عنوان سانوی واجب اهم و واجب مهم است که بر اساس اون باید اصل واجب رو بر در واقع رعایتش فر رعایت و امتصالش مقدم بشه خب چرا چاره ای نداریم چون که میگیم اونجا ظاهر این قضیه اینه که باید این رو یه قاعده بگیریم کنه زوق عمومی هم میخوره در واقع مستند این چیه؟ مستندش مستندهای خاص داره مستندهای خاص در هر کدام از واجبات وجود داره یکی از مستندهای آمه خب مستنت های خواست سوال و کامور نداریم یه مستنت عام چیه در واقع اطلاق واجبات خب اطلاق واجبات اگر بخوا رافع باشه با هم تظاهن پیدا کنن تقابل پیدا کنن کدام مقدمه اصل در واقع عدله هر یکی از واجبات اینا اطلاق دارند نسبت به چی نسبت به در واقع انجام و ترک در واقع واجبات بگیم مکمل و بگیم مقدمات مقدمات شروط و اجزا اینها اطلاق دارند یعنی بگی که باید این انجام بگیره یه نکته کلی من ارس کنم در تمسو که در واقع یک روش عام برای روش عام برای اثبات اهم بودن این اون تذکر که یکی دوستان دادم بعد از اشاره من ما تو فارسی اهمیت رو من مهم بودن داریم میگیریم لذا تو وقتی که اشاره میکنیم اگر میخوایم حالا یه تأکیدی به از اوقع من میکنم میگم اهم بودن میخوایم که بگم تو عربی اهمیت و مستر دیگه اهمیت یعنی این نسبت به یه چیز دیگه مهمتر باشد ولی تو فارسی و منایه دیگه تفضیلی رو مکن نداشته باشه لذا این اشاره ما از این بابه روش آم برای اثبات اهمیت از اهمیت داریم تو توی کل این بحث یعنی اهم بودن ها دعنی مهم بودن نگیرید فارسی نگیرید روش آم برای اثبات اهمیت داشتن بگیم مهمتر بودن اون واجب یک واجب نسبت به واجبات دیگه چیه این اطلاقشه میگه آقا من در هر صورت باید تحقق پیدا کنم فرقی نمیکنه اون انجام بگیره نگیره اونم هم همینو میگه نه. در واقع تمسوک به اطلاق اونهاست خب اگر ما میخوایم یکی دو واجب بیرفت رو با هم مقایسه کنیم بگیم این اهمه اون میگه من اهمم من واجبم مطلقا اون یکی هم میگه من واجبم مطلقا رفع اطلاق در واقع برای بررسی موارد تزاهوم خلاصه باید مرجحاتی رو ما از مرجحاتی غیر از اطلاق پیدا کنیم اطلاق اونها یه اختزایی داره اطلاق خلاصه هر دلیل باید رایت بشه همه اطلاق ها خلاصه باید رایت بشن اما همه لا اطلاقا همه اطلا یک پیشوردار این پیشفرض رو میپذیرند که اگر دلیل اقوا برای اهم بودن واجب دیگر وجود داشت می توان از این اطلاق رفعیت کرد. وسته به تعبیر دیگه ما از دعادله دلیل اگر دلیل داشته باشیم اگر دلیل اقوا و مستندی داشته باشیم اگر دلیل داشته باشیم تو خلاصه دلیل قابل قبول و اقوا از اطلا از ظهور اطلاق یک دلیل ما داشته باشیم می توانیم رفیت کنیم اطلاق یک واجب داشته باشیم اینجا زمینه رو درست میکنه می توان از اون از ظهور اطلاق اون مورد دست برداشت درست به چند ازه به همون اندازه به اندازه که خلاصه قابل قبوله به اندازه اقتضای اون, اون دلیل دست برداشت خب در این صورت ما خلاصه به اهم بودن یک مورد دست پیدا میکنیم اهم بودن یک دلیل و یک واجب اثبات خواهد شد هرچند اطلاق بدوی اون مختزی اهم بود در واقع اطلاق بدوی اون دلیل مرفوع رفت اون دلیل دیگه دلیل دیگر هم خلاصه قابل تمثب در بدو امر باشه اونجا دیگه رفعیت میکنیم باید از مرجحات دیگه از شواهد و قراره دیگه به دست آورد در مجموع ادله هر کدوم از اینها داره میگه آقا من مهمم ما اگر بخواهیم در واقع کشف اهم و مهم مقتضی بررسی مقایسه ای میان اطلاقات ادله است درسته خب از این جهت ما کمک میگیریم از این راه کمک میگیریم و میگیم که یک دلیل خب اینجا که وقتی میگه تقدیم الاصل علا فرعه قاعده ای دوستان اگر نکتهی دارن بفرمایه یه دقیقه بیشتر نمونده که فراموش نکنیم جلسه بعد اشاره کنیم حتی قد. قاعده تقدیم الاصل علا فرعه یک اختزایی داره و اون چیه می توانیم بگیم که مقتضی در واقع تقدیم عدله خود یک دلیل و اصل یک ببخشید اصل یک واجب واجب بر فرواتونه. یعنی همینطور که در بین دو دلیل ما مقایسه می کنیم، اینجا هم می توانیم مقایسه بکنیم. و بنابراین اینجا شما یه دلیل عام اگر چون این قاعده اثبات بشه یه قاعده عام خواهید داشت که بر سایر موارد مقدم میشه جدا از عدله خاص اونها و الا در صورتی که عدله خاص بر تقدیم برخی فروعات ما داشته باشه اونها مقدم خواهند شد